تصویر انسان است. انسان باید این بونه گیچی را این بونه هستی را در خود به پیدایش بیاورد این خدایان ایران را بزاید این است که بحث ما همون بحث تصویر انسان در پرهنگ ایران است موربی موربی میگوید قاف توی مسکن سیمور را قاف توی مسکن سیمور را شم توی جان چپرمانه البته ما شنیدیم کوه قاف و, و اینها همه کوه افسانه ایستونه ولی قاف اصاسه واژه قف این را ما از خواهانی می دانیم که به این سه تا یک تایی ای در ایران این سه با در زمیر انسان در کیخان یک تا می شود به این سه قرقف میگوید که سه قرقف در واقع به معنای سه تا بند نی بند نی معنای نوجایی داشته است چون که در نی هر بند تازهی که میاد جایگاه رویش نی تازهی می شود این است که در فرهنگ باستان این بندنه فوق العاده اهمیت داشته است اینست که خود این واژه قف در کردی همه این معانی را حفظ کرده است یکی به معنای قار است قار جایگاه آفرینش جایگاه تولید بود و طبعا جایگاه شیمر بود یکی جای بردمیدن خوچه قله است اساسا خواهیم دید در فرهنگ ایران همیشه رو به خوش رسیدن همیشه معنای پرواز به, به پرواز پرواز به سیمرغ سیمرغ درونی به سیمرغ مرغ آسمانی داشته این است که یک معنای دیگرش بندنه است و از معنای دیگرش من میگذارم فقط اخواستم بگویم که این قافتوی یعنی جای بردمیدن خوشه تازهی جای بردمیدن آفرینش جدیدی هستی این است که اونجا مسکن سیمر هست یا در جای دیگر میگوید تو مرغ چار پری تا براسامان پری تو از کجا ره بامون هردوان از کجا؟ نا ره بامون هردوان از کجا؟ انسان اجاز به نردبان ندارد انسان مرگ چار است میتواند پرواز بکنه سی مرغ هست، هماست. این زمیر تو، این گوهر تو مرغ چهار که همیشه میتواند به اصلش به بنش پرواز کند و تو نیاز به واسطه نردوان همیشه در اصطلاحات مولوی معنای واسطه هست تو احتیاج به میانجی نیاز انبیا کتب مقدس نداری. و با باقره های خودت میتوانی به حقیقت پرواز کنی یعنی به انبیا و کتاب های مقدس و ایدالوجی که خود را حقیقت منحصر به فرق میدارن نداری در این تصویر انسان را در فرهنگ ایران چون فغر آده و پرمعناس ما اصلا نمی توانیم باور بکنیم علتش این است که ما در تصاویر دیگر انسان چنان غرق و آلوده هستیم که و به ما گفتند که فرهنگ تو فرهنگ جاهلیت است فرهنگ تو هیچ نیست فرهنگ تو اصلا تو فرهنگ نداری این سبب شده است که ما به فرهنگ خود ما نمی در فرهنگ ایران به انسان مشیه می در هدوارش مشیا این همون واژه است که امروز ما مشت و مشت میگیم مشت و مشت هر دوها یک واژه است معناش یعنی پر و لبریش و سارچو این همون واژه است که اینی که گفتم انسان پر است انسان لبریز است این که انسان مشیا خانده میشود این سپس در تورات و تو انجیل تبدیل به واژه ماشیه و مسیح شده است این البته آخونده های هر دینی هر خدام از این ادیان میکوشند که نشان دهند که دین خودشان از جای دیگر سرچشمه نگرفته است همش وحی منزل است بنابراین سعی می‌کنند که این واجه ها را از اصلشون پاره کنند. مانعه اصلی خواه نخواه. مثلا واجه یهوه جهوه بوده است جه و هنوز این روشته می شود. جه اسم سیمور بوده است یعنی زن به یعنی به یعنی زن به و این این را الان ببینید به ابری چه معنایی بهش یا اینی که ابراهیم آب ابراهیم آورام بوده است یعنی آهنگ رام آهنگ خدا خدایی دهره و ن... یا نام پدر موسی امرام بوده است یعنی ا... ا... که بعد شده است موسی امرام در حالی که امرام یعنی مادر رام مادر رام سیمون است بیمینید که همه اینها را برای شما ب... برمید در می میبینید همه معانی دیگری از اینها در آورده شده است ماشی هم در تورات و انجیل به معنای تطهیم شده به کار دارد برای اصلش معنای سرشاری و پری بوده است و از فرهنگ ایران آمده است و این معنای اصالت دوشته است این خداست این هرچه هستی که اصالت دارد سرشار و لبریز است چونکه در این جهان خدا برای آفرینندگی می افشاند اون که, اون که افشاننده است اون که جوان مرد است جهان را از خودش میافشاند او آفرینده است. بنابراین افشانندگی علامت اصالت بوده است. از این است که به انسان چون که اصیل است مشیه گفته میشد. مسیح به انسان مسیح بود. یعنی چیزی است که اصالت دارد. از خودش را فوران می کنند. به همین علت نیست نامه. دیگر سیمور که یکی خورم بوده است یکی پرخ بوده است یا یعنی دیگرش مشتری است مشت تری یعنی تری همون واجه است که حقامنشه ها برای سه بکار مردن امروز بود انگلیسی این یعنی سه تا اصل سرشار سه تا بون سرشار به همین علت چون که سه اصل سرشاری بود به همین اولا رب ارباب حتی این باقی مونده است یعنی خدای خدایان است و به همین علت او را سعد اکبر میخوندنست سعد اکبر سعادت بود این است که خورمدین ها بعدا در, در فارس و جاهای دیگر به الوان سعیدی ها مشهور بودند. سعیدی ها این همین خورمدین بودند. اسم دیگری داشتند، ولی همون همون خدا، سیمور خدایشون بود حالا این نام مشتری در عربی یکی از نام های دیگرش اهور رو اهور نویسند. با های هتی. ولی همین اهور همون احوره خودمان است که در اصل اورا بوده تو منای ابر چرا؟ برای خاطر که اصل افشانندگی و جوانمردی است. و سی هم میخ مه مو بوده است. یعنی اصل و در شاهنامه ابر تاریک است. همیشه عبر تاریک است یعنی سرشار ابر جوانمرد خودش را میعفشانه البته مشتری اصل زیبایی هم شمرده میشده است این در پرنگ ایران خیلی مهم است جمشید زیبا جمشید سریره انسان زیبا است. این اینست که در میبینیم که در گزیده های میبینیم که پوست که این همانی سپری که پوست از سپهرشی این, این همانی دارد با مشتری این همانی دارد با سیمور و این همانی دارد با زیبایی یعنی این خدا زیباست به همین علت در ادبیات ما هنوز رد پای این باقی منده است هر گونه زیبایی رو با او می سنجن. او مجموعه همه زیبایی این ما تفاوت این مقروم سیمر را این زیبایی را نیکی را اینها یک بار با موتور افلاتون ایده افلاتون مقایسه خواهیم کرد چی و تفاوت جرف آن را خواهیم گفت. این مجموعه همه زیبایی ها سیمر است. این سایه زیبایی او نیست عكس نیست بلکه مجموعه زیبایی ها همه زیبایی ها در اون انواز شریک شریک حالا مثلا ما میگوییم در شعرها اگر در ادبیات نظر بیفت ببینید می آمده از مشتری طلعت مشتری چهره مشتری رختاره مشتری آرز مشتری ادار مشتری نظر مشتری نهاد این همون خرم یا سیمرغ است که در اصل افشانندگیش انسان همون سرشت همون زیبایی و همون گوهر خدا را دارد سرشار و لبریز است. انسان کمبود ندارد که خدا به او بدهد. بلکه انسان همون سرشت خدا را دارد همون گوهر خدا را دارد انسان مسیح است، انسان ماشی است. به همین علت تورات کوروش را مسیح میدانست است ماشیه میدانست است چون انسان سرچار و لبریز و افشاننده بوده است این آرمان انسان حقیقی در ایران بود هر انسانی باید, باید مسیح باشد به همین علت نام پادشاه بزرگ ایران در شاهنامه منوچه استمنوچهو منوچ... چیتره چیتره همون چهره است که ذات و گوهر باشد برابر ذات و گوهری برابر با طیف گسترش و پیدایشش منوچ این همون واجه است که در سانسکریپ منوچه و منوچه است و به معنا همون ماشیای های ایرانی است پس بنابراین منوچه معنیش است که گوهرش سرچاری بود. این یکی از بزرگترین ویژگیهای انسان بوده است انسان مشیعست تلفظ این را ما میتوانیم از تلفظ های مختلف همیشه گواه بیاوریم بریم مشیاکت. مشیاکت. یا در تلفظ دیگرش مشیعکت یاک هنوز در کردی به منای مادر است مش به معنای پروی و است پس بنابراین مش، مشیاکه یعنی مادر و اصل سرشاری و لبلیزی هست این ببینید اینجا انسان اصل فساد نیست در همون دقیقه اولش گناه نمی کنن. در همون اعدرقه اولش طاقی نیست جاهل و ظالم نیست اینها کنوت نیست به قول قرآن یعنی بخیل و خسیس این انسان پرست انسان سرشار است، انسان اصالت دارد به همین دلد سفت خدایان ایران امشا سپنتا بود امیر که کاهش شاهده سبب شده است در امشا سپن. امشا را ترجمه کنن ناموردنی ولی ام ام این اعه ای تاییدیس گواهیست امشا ام یعنی سرشاری یعنی سپنتای سرشار خدا و انسان در فرهنگ ایران چون که از یک گوهرن هر دو اصل, سر سر اصل و سرچشمه و گونه سر سرشاری و لفریزی هستن ببینید این اصل بعدا در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی بس خواهیم کرد که بینید این چه نتایجی میرسد اصلا تمام روابط اجتماعی فرهنگ ایران بر بر همین پایه اصل سرشاری انسان بنامشه. نه بر اصل کمبود انسان این است که میبینیم که خدای ایران انسان ایرانی اصل افشاننده اصل جوان مردی اصل رادی هستند این فرق خدا در دانشش راد است یعنی چی؟ یعنی اونچه را میبخشد او دیگر نیست مال همه است به این بین, بین, بین علت است که تخصص، تخصص دینی یا غیر دینی ایجاد حاکمیت نمیکنه خدا خردش رو می پاشد پخش میکنه همه همون خرد رو دارد. این را این میگویند اصل رادی است که در فرهنگ ایران از اصل رادی امکان حاکمیت مو و حاکمیت آخونت ها وجود نداشته است این رو بعدا جعل کردند. در درباره اینها ما به طور تفصیل صحبت خواهیم کرد که چجور و چگونه این را جعل کردن پس انسان چه میشود و خدا سرچشمه شادی آورنده و سعادت ساز و جشن ساز میشود. این سپنت ها را امروز در کتاب ها به مقدس ها ترجمه می کنن. یعنی می گویند امشاست پندان یعنی مقدس یا امثال این واجه ها ولی این سه پند ها همون سه پند, پند، سه پنا هست ده حتی در خود گاتا سه پنا هم آمده است حالا سه پند تا پند معنای ذهدان داشته است در, در کتاب های مقده ها می نشیمنگاه ولی اینها همیشه تحریف میکنند. زهدان را به جای زهدان توهیگاه نشیمنگاه نمیام نشستگاه امثال اینا میگذارد و بنابراین یعنی سپنده ها یعنی ستا اصل که بحث اینجا این قوای زمیر همین ستا پن هست به،, به،, به همین علت که پن در زبان کنونی ما معنای خیال و فکر و تصور رو دارد هم فکر است هم خیال است علتش است. که در اون موقع صورت اندیشی و اندیشیدن در مفاهیم یکی گرفته می در اینکه که زهدان و تو اصل دانش و بینش هستن این را ما در در های مختلف داریم اصلا بینش زایشیست بینش دایشید. بینش حقیقی است که از خود انسان دایده بشهد. اینه که مثلا ماجیه پرزانه در کردی پرزانه یعنی زکتان. یا اینه که همینجا این پند یا اینه که در زانا که به معنای دانا سر کردی زان معنای داییدن است. از این معانی زیاد است که من در موقع مناسب هنگام مناسبی اینها رو خواهم بود. در این جهان که مردم صورت اندیش بودن خیال و تصور همون فکر بود این است که وقتی ما میگیم اندیشه نیک معنی صورت یکی هم دارد ولی این, این اندیشه معنی های چون که پند اینجا می نویستن پندار نیک این معنی این پیدا می که بینش زایشیست بینش بینشی نیک است که از خود انسان زایی نمی شود در پرهند ایران بینش حقیقی بینشی بود که از خود انسان بداید از این رو پیدایش هستی برابر با پیدایش خرد بود این یکی، این،, این دوتا با هم همارندی داشتند انسان و، و، به حسدی میاب و با این هستی یافتن خرد میاب خرد و حسدیش با هم یک این همانی داشتند این بود که بین اما بین عمل و تئوری این فاصله که امروز در اثر مفهوم به وجود آمده است وجود نداشت این یکی از عقل در اروپا و در قرآن این همیشه این فاصله را دارد در خرد, خرد ایرانی این فاصله میان عمل و میان تئوری میان اندیشه نیست گفتارنی با و این همانی دارند با تپندار و اندیشه بین این است که به همین علب به زاد چون که مرغ بینش بود و مرغ زادن بود این بود که پنج می گفتن این است که انسان تخمی بود که از دو نیمه تشکیل شده بود یک نیمه اش آسمان بود یک نیمه اش زمین یک چخمه به هم چسبیده به هم آمیخته اون نیمه آسمانیش سیمر بود نیمه زمینیش زم... زمین بود آرمیتی آر... آرمت... و سیمر این راست که در شاهنامه اون آشپس های زهاب که یکی ارمائیل هست یکی گرمائیل همین دو خدا هستند که اینها گوهر, انست... گوهر انسان هستند حالا این یه این, این دو خدا دو بخش مختلف انسان بودن یک بخش زمینی بود که تن باشد این ارمته ای زن خدای زمین ولی تن فوق العاده اهمیت داشت برای چی؟ چون که تن به معنای ذهدان و توهیگا یعنی از دید آنها سرچشمه آفرینندگی بوده است این است که امروز هنون در واجه های تنبان و تونکه که ما این رو داریم این معنای زهدان رو داشته است و این این بخش که این همانی با آرمتی دارد در شاهنامه ارمائیل بود در در جای دیگر شاهنامه همون گاو تابوس رنگ است که فریدون از او شیر می نوشد این این بخش تن اینسان است که این اهمیتش این همانی داشتن با این خدا فوق العاده مهم است چون که بیجیبی های این خدا رو که بدانیم اون وقتی معنای تن را در پرهنگ ایرانی خواهیم شد بخش دیگرش امرو اگرون بحث ما از چهار بخش دیگر است که این همانی با چ مرغ این همان مرغ چهار یا مرغ زمینیر در آثار در غزلیات مهورهشه مثلا مولوی میگوید مرغان زمیر از آسمانم روزی دو روزی دو سه بسته زمینه هم زانشون از این روزانشون ز فلک کردند کردن هرچند ستارگان دین یا اینی که در جای دیگر میگوید چنین بلند چرا میپرد هما زمیر شنی بنگ سفیری ز ربیالعلا این مولوی همیشه این افکار ایرانی را با یک استراح اسلامی قاطی میکند تا اینی که اون فرهنگ ایرانی بتواند فرهنگ ایرانی را نجات بدهد انسان قاف یا قف است که مسکن سیمرغ است و همای زمیر بلند پرواز است و مرغان زمیر از آسمان هستند این ما اینجا اندکی سر زمیر که گوهر انسان هست که تصویر انسان هست به می بر پردازیم این زمیر چیزی جز همان زمیران و ضيمران نیست که در به گیا به شاهس param گفته می‌شد این شاه اصلا اسم سیمر بوده است بعدش شاه ها با خودشون دادن شاه اساسا همون که واژه شاه هست به معنای نهاد و اسم سیمور بوده است. و زمیر زمیر همون سمیر و سمر و سمران است و که معناش سه, سه اصل و این سه, اصله سه ریشه و سه بیخ جهان و زمان و انسان هست و همین سمیران اسم اوزی هم بوده است که در مکه خدای اوزی این همیشه واژه است که معنای نای نایاست و این این همانی با سیمور داشته است چرا این سمیران این سه این باید این سه تا این سه تا چطور چهار تا شود این یک جای مثلا در بوندشت میاد سه انگوشت سیمور و سه انگوشت این میخوان این سه یک تا یکتا را حتل مبدر بکشوند. این سیمور همون ماه بوده است. ماه از چه پیدا می شود؟ در پرهندیران ماه از بهمن پیدا می شود که اصل ناپیدا مینوی خرن است و ارکه دنیا است. از این بون ناپیدای هستی هما یا ماه پیدایش پیدا می شود. و ماه ماه سه بخش دارد هما هم یک اینها با هم می شوند چار با. چار بخش و این همون چار بخش که مرغ چارپر یا همای چارپر هست که در هر انسان هست ماه سه بخش دارم این بخش که بهرام است، یکی رام است، یکی فروردین یا ارتاق فرورده ماه پر بهرام بعدش در ابریو اینها جبریل ماه پر بهرام بود مجموعهٔ های جهان بود و رام حلال ماه بود علامت آبستنی اصل مادینگی کیهان بود و ارتافرور مجموعه آن دو و آمیخته آندو با هم بود این است که سیمرخ ابلغ است حالا این را بحث جداگانه است این یعنی هم مدینه است هم نریله است به همین علت به همین علت چکی از نام‌های بزرگش که امروز ما خواجه حافظ خواجه فلان خواج این خواجه اسم سیمر این و بوده است حالا این بهرام و ارتافربرد و رام این ستای بودن بودند که واژه زمیر را تشکیل داد سمیر سمره و اینها از ارکیه جهان از مینو خرد از خرد سامانده پدیدار شده بودن بنابراین بهمن و این ستا با همدیگر همون مرغ چارپر می شدن همین زمیر انسان را همین زمیر انسان حالا ببینید اینها را در دو برای خاطر که این فرهنگ را از بین ببرن همیش در همه جا این صورت‌ها را پارهپوره میکنن در مفاهیم و از هم این است که ردپاهاشان در این چیزهایی که گاه به گاه در جایی ما پیدا می باقی مانده است اگر نه در متون اصلی تا می توانستند اینا را ولی گاه به گاه یک اشتباه می شود در اون جاها پدیدار می شود. این, این همه زمیر را گوهر هم بینامه گوهر انسان چرا؟ برخوادی که در حوض وارش میبینیم در حوض وارش این حوض وارش حوض وارش وارش یعنی گردان زن یعنی معنای دقیق امروز یعنی تحریف کردن عوض یعنی نه این زن خدا عوض بوده است که اوزی شده است و این را این واژه‌های فرهنگ زن خدایی رو بعدش همه رو تحریف کردند. در این تحریفات یکی از بزرگترین ستچشمه معرفت ما به فرهنگ زن خدایی باقواندن حالا این در اینجا میبینیم که گوهر معنای دالمن داره. دالمن می‌گویند اقاب است. ولی اقاب نیست این چون که این را باز شهباز شاهین امثال این ها گفتن از اینجا ها میفهمیم که سیمور بوده است چون که باز واز یعنی اساسا یعنی پرواز کردن واز پرکاواز کردن و شاه باز یعنی سیمور که پرواز میکنه. شاهین شعنا بوده است سعنا یعنی ستانه یعنی سیمور، اسم سیمور، سیم سعنا سان بوده است. پس بنابراین این گوهر خود گوهر معنای سیمور رو دارد و میبینیم که همین گوهر باز در همین عضوارش ها چهار بوشی هست. چهار تا همون چهار همست. بوش یا بوج یعنی و یا نگی این به معنای چهار زندان یا چهار اصل است پس گوهر انسان چهار اصل است چهار زهدان است یعنی چهار اصل آفریننده است و دالمن که میگن اوقاباست دال دی. مینوی دال تخم دال در کردی هم معنای کرکش را دارد هم معنای خوشه رو دارد این تونچه و مور در جاهای مختلف های مختلف ایرانی هر دوتا یک معنای داره علتش این بوده است که روئیدن برابر با پرواز کردن می انسان در رو ایدم به آسمان میرفته است این را پرواز کردن گفتم. انسان در رو ایدم خدا می شده است این معراج است این است که مثلا یک واژه یک دالو به مترسک می گوین. این چیزهایی را که نصب می در مزارع و اینها تا از آسیب جانبران محبوظ مرن مطرسک می کن. خیلی ها خلال یعنی چیزی که نباید یعنی چیزی که می ترسانند مطرسک محفف سبب شده میتراس بوده است. که اسم سیمرغ است این اینها همش همهشت ردپاه که باقی مونده است. گوهر انسان که در همون ذهدان تن قرار داره شخباد و خوشه است که اصل زاینده و آفریمنده این وقت این اصل در بونه انسان این سیمورخ ها هست. این سیمورخ ها همه وقتی با هم به پیوست کردن همه یک سیمرغ میشن. با هم آمیخت اون سیمورخ می شود این است که اون تقم هایش رو می میپا... در هر انسانی یک تخم سیمورخ هست. این قضیه این بوده است که این پیوند یافتن این سیمورخ درونی با اون سی که مجموعه همه سی بوده است. یعنی مجموعه همه انسان ها بوده است. این بوده است پیوند یافتن این دو با هم دیگر از سر سبب آفرینندگی می شده است. این ارتباط مستقیم، این عشق مستقیم، مستقیمه، بون انسان، هنه همای زمین، با بون در فراز درخت هستی که سی است، این سبب نوزایی و نو آفرینی و سعادت و و خوشی می شود، شادی می شود. این است که همای زمین برای نو اندیشی دست به بینش و اندیشه تازه باید به سال سی برسد که بون آسمانیش هست این است که اندیشیدن و شادی و شنیدن موسیقی و جشن و جستجون همه واقعیت جوابی این وسال سیمرغ درونی با سیمر و آسمانی بودن از این همای زمیرهای انسان که با آسمان پرواز میکنند و با هم می آمیزن چجور با هم می در همپرسی در جستجو با هم دیگر در دیالوگ با هم دیگر این در این دیالوگ است که سیمور پیدایش می آمد. در گوزی... حالا ما اینها که اینها گفته شد این اصل معراج انسان این معراج های زمیر انسان که در هر انسانی بوده است با اون همای اصلی که یک نوع عشقورزی بوده است و این سبب پیدایش اندیشه تازه بینش تازه و رسیدن درک از نوع اصالت خود بوده در گذیده های زادسپراند ما یک رد پای دیگر پیدا می که این به ما خیلی یاره میدهد تا معنای اصلی گوهر را بفهمیم میبینیم که یک دفعه در اونجا در بخش سی چهار در بخش سی و چهار پرم تخت را با گوهر یکی می و به جای گوهر تخت میگذارد. حالا این یعنی چی؟ یعنی گوهر همان تخت درست اینجا به ما یاری میدهد و میفهمید که چرا در داستان شاهنامه جمشید تخت میسادد سوار تخت میشود که دیب میبردش آسمان هر وقت میخواهد این چارپر جمشید یعنی از خودش گرفته میشود و یک تخت خارج از او به او داده میشود انسان چارپر این یک واقع انسان چهار تا پر دارد زمیر انسان چهار تا پر دارد اینجا اون چهار پر جمشید گرفته می شود و از این به بعد انسان بی پر درست می شود انسانی که احتیاج به نردمان دارد انسانی که دیگر خودش حقیقت را نمیتواند بفهمد رابطه مستقیم دیگر با حقیقت ندارد این دادن تق و گرفتن پر برای دادن تخت و گرفتن پر از او همین سلب اصالت از جمشید بوده است حالا ببینید اینجا این است که در شاهنامه جمشید بر فراز تخت می مینشیند تا به آسمان پرواز کند و دیو میبردش آسمان و فر تیانی یکی تخت سا چهمایه به دو گوهرلر رشاخت که چون خاستی دیو برداشتی زهامون به گردن برافراشتی چه خورشید تابان میان هوا خورشید یکی از چهره های شیوار چه کرشید تابان میان هوا نشسته برو شاه فرگان جهان انجمن شد بر آن تخت او شگفتی فرو مانده از بخت او به جمشید بر گووهر شانددن مران روج را رود نو خواندند اینجا. نورود درست چسبیده می شود به پرواز, به پرواز. سر سال نو هرمز فرودین برا سود از رنج روی زمین بزرگان به شهادی بیاراستند می و جام و رامشگران خواستن چنین جشن فررخ از آن روزگار بماناد از آن خودشوار یادگار فررخ که اسم سیمر بوده جشن فررخ یعنی که جشن نوروز باشد یعنی جشن سیمون در این رعایه عجلشی میبینیم که پرواز با تخت به فراز آسمان به جشن نوروز چسبیده شده است البته چنان که گفتم پرواز همون معنای رویدن را دارد این خوشه با وقتی که خوشه فراز شاه بوده این است که معنای پرواز همیشه معنای خوشه را داشته است. خواه نخواه هر کوشه هر خرمنی جشنی دارد اینست که جشن نوروز جشن پرهی و سرشاری امسان را نشان میدهد. البته دیو به معنای مادر زن خدای ایران سیمرغ است. و جشن فروخ نام جشن نوروز است. نام فروخ نام دیگر این خداست همچنین تختی که چون خرشید تابان است باز اشاره به همین زن که چه نام دیگر خورشید فرخ است در آثار رو دیده می شود که جمشید سوار تخت نمی شود بلکه می عید بودن نوروز را چنین گفته که جم... چون جمشید برای خود گردونه بساق در آن روز بران سوار شد پس گردونه با اصم و اینها می سازد که مقصود گردونه چهار اصم است. این تو هم ساختن پرواز با تخت یا گردونه با جشن نوروز علتی دارد. تخت که همون عریکه یا سریر باشد و همون گوهر باشد که گفتیم که اینجا بینید خط زدن رد پارا یعنی گوهر بوده انسان بودست است. خودش چارپر داشته است به تخت نداشته است. همه رد پاهای همون مرق چارپر باقی منده است چطور این در جای دیگر هم باقی مونده است؟ در داستان کابوس می بینیم که کابوس با تختی که چهار اقاب آن را میکشن و میبرند به آسمان پرواز میکنن باز در اونجا پر را از کابوس میگیرند و با اون تدبیر و حیله که او با چهار تا مرغ به تختش میبندن پرواز به آسمان میکنن که این داستان مفصل دارد که چرا راه آسمان بسته می شود انسان دیگر خودش حق رفتن به معراج ندارد به بینش حقیقت خودش نمی رسد این با داستان کاووس موبت راه معراج انسان ها را به حقیقت به خدا به کلی می بندند واجه, واجه این گوهر چونت این گوهر را گفتیم در گذیده های زادست پرم با تحت یکی گرفتن این واجه گوهر معنوس همون کلمه گور است گور شده از بعدش در پرفوت گوهر و گور گور که ما به قبر میگوییم در اصل زهتان سیمور میباشد چون که در در زهتان سیمور در گوها همه اثر گنده میشن رستاپیش پیدا میکنه اثر جنینی هستن مورد جنینی است که اثر تولد پیدا کند. این است که میبینیم این رد پاها باقی مانده است یکی اینه که ب به چهار ستاره نفس تخت روان میگویند چون که اینها اون ستا این سه اصلی هستند که مرده را میبرن تا اثر بنده بشون برای همین خاطر تخت روان میشونه یعنی به تابوت تخت روان میگویند حالا ردپای این معنای گور به خوبی در کردی باقی مانده است گوران به معنای تکوین یافتن جنین در رحم و به معنای رستن است یا گوراو به معنای تکوین یافتن و از پوست در آمدن و تغییر یافته است و گورانی به معنای ترانه. است پس گور یا گوهر یا تخت اینها همه با هم برابرند است که فوری تغییر داده می شود و تکوین جدید می, آب. می آب. به همین علت به آسمان تخته مینا می بفتن. همونگونه بر تخت نشستن این معنا داشت. بر تخت نشستن یعنی تحول آنی و فوری یافتن و حقانیت یافتن از سیمور بوده است. این با, با سیمور یعنی با بن رسیدن به اصل حقیقت رسیدن بوده است. این معنا رو داشتن. حالا اینه که بهرام گور میگویند ربطی به گور نداشته است. این معنایی چون که بهرام این بهرام را خیلی با اون بهرام خدای بهرام این همانی می دادن بهرام است که تغییر می آبد تحول می این از نوع زنده می شود چون که در دوره ساسانیان همه منتظر بهرام بودن همه منتظر یک نجات بخش ایران بودن اونقدر از سلسل ساسانی ها رنج مردن که همه منتظر بهرام بودن و زرگشتی ها هنوز منتظر بازگشت بحرام حسن و همین علت این با گردون رفتن یا با تخت رفتن جمشید همون پرواز بینش و معراج پکریست و این راهش را در کیک به کلی می بندن. اما این, این همین پرواز این پرواز در پرازه تخت این همون خرد است که در اندیشیدن در جفت جو, جو کردن در تجربیات به انجمن خدایان پرواز کند و همپرسی با خدایان کند این را در یک گفتگو در باره همپرسی دیالوگ در فرهنگ ایران خواهیم گفت. در انجمن خدایان جمشید با خدایان دیالوگ کند انسان در اندیشیدن با خرد خود در جستجو کردن و پژوهیدن یعنی در منیدن پیوند مستقیم با خدایان میاد بر پای چنین بینشی که انسان به هشت در روی گیتی و جشن نوآوری رو می آفریند این چنین بینش مستقیمی مایه زندگی است که جشن ما اون رو جشن می نامی. این چنین بینش مستقیمی هست که جشن شهر یا شهر خرم را می سازد ایرانی ها به شهری که در آن برابری بود و شاه و سپاه در آن نبود یعنی جمهوری بود شهر خرم میگفتند البته ما همه میپرسیم که چرا ایرانیها واژهای برای دموکراسی ندارن چرا دارند ما نمیدانیم ایرانیها نمیتوانستند چند هزار سال صبر کنند تا یونانیان بعد از چند هزار سال چنین شهری را دموکراسی بنامند آنها پیش از اون چند هزار سال پیش از اون این شهر را شهر ولی جای افتوس است که ما این واقعیت را نمیدانیم ما از فرهنگ خود ما بیخبریم اکنون نگاهی کوتاه به داستان جمشید در شاهنامه میبکنیم مو به دانش و الهیات زردشتی راهی جزئی این نداشت که ایجاد مدنیت و فرهنگ را به احورا مزدان رسپت بودند. این رسم همه از میخوام همه چیز را به خدای خود نسبت بدم. طبعا می این خدایانی را که در پیش خدایان مدنیت آفرین یا آفریننده فرهنگ بودن یا اصل شهر سازی بودن اینها را از چنین های دور بکنن مدنیت سازی سازی شهر بیشافت سازی شهر قرم آرایی نیاز به دو چیز داره یکی به بینش مستقیم انسان و دیگری اندیشه و یقین به بهش سازی بهش ساز بودن انسان انسان یقین به عملش دارد که می با عمل خودش در جهان بهش بسازد و می زندگی در گیتی را تبدیل به جشن همگانی کنه پس بنابراین نیاز به این با. یقین دارد نیاز با اون بینش مستقیم دارد نیا... نی... بینش بدون نردبان این اندیشه دو چکل به خودش میگیره. باید محروم بکنن وقتی میخوان شهر دیگری مدنیت دیگری بسازن خاناها انسان را از این دو است باید محروم بکنن این اندیشه یعنی محروم سازی انسان از این چهارپر در دو شکل ب... شک به خودش گرفت یکی شکلیست که در داستان ککاووس به خود گرفت که میرود و, و چون گناه هست کار گناهامیزی میکنه و اون عقابها به جایی نمیرسند و پرت میشود به پایید و توبه میکنه. این یک است دیگر شکلیست که در داستان جمشید در شاهنامه خود گرفتند این شکل خیلی جالب است باید این رو اندکی دقیق فهمیم اگر به داستان جمشید در شاهنامه به دقت خوانده شود دیده می شود که کارهایی که جمشید می همه برعایندهای مختلف مدنیت است با این, این کارها همه یک یک اجزای مدنیت, مدنیت در جهان هستند پارچه می اطریات فراهم می آورند کاخ می سازند و خانه می هنر پزشکی می سنگ سنگهای قیمتی را پیدا می کنند کشتی می سازد تا جهان را بپیماید و در آخر با آسمان پرواز میکند و جشن نوروز را می آفرند. یعنی با خرالش بهش می سازد. که بیان آن است که بون زندگی در گیتی جشن است و زندگی باید جشن یعنی معنای جشن نوروز این بوده چون که این جشن نوروز بون همه سار اون در نوروز اتفاق می باید همه سال همون جور آنگاه اونگاه در اوج موفقیت در اوج پیروزیاش سبب برشکسته می شن. این تمام این کارها همه مقدمه برشکسته همه مقدمه این است که مدنیت و اینها همه به هیچ پوچ همه اینها فقط یک پیاین دارد همه این کارهای انسان سبب غرور فوق او می شود و خود را همسال خدایان میپندارد و مقدوب خدایان می شود و این بودترین گناهیش که کرده است یعنی مدنیت سازی و تمام اینها بودورترین گناه او می شود چونکه این کارها را کی باید بکنه باید خدا بکنه. او به بینشی در است که هر او ندارد این کارها از این پس خیشکاری انسان نیست. بلکه این کارها را باید خدا یا اهور آمده بکنه نمی‌بینی که داستان چمشی نشانه ب... این است که انسان نمیتواند بهش بسازد. انسان نمیتواند گیتی جشن بسازد. انسان با خردش نمیتواند کاری بکنه بنابراین اینها را باید بگذارد. از همه اینها محروم میشود. چرا؟ برای خاطر اینی که اهور آفریننده مدنیت باشد. بعدش الله و پدر آسمانی و یهوه باید سازنده مدنیت می شود دستیافت مدنیتی که انسان بسازد در هم فرو می پاشد و با شکست و افتضاه و تباهی و گناه رو برو می شود دستیافتن به بینشی که از هم پرسی انسان با خدا برقاسد ساختن مدنیت بر پایه خرد انسان ساختن جشن و جزد زندگی. همه اینها گناه بلکه برترین گناه می‌شود. این اراحیات منحت زردشتی نه تنها در دوره ساتانیان ایران را از بین برد، بلکه ایرانیان هرگز با این چنین افکاری نمی توانند ای ایرانی نو بیافریند بریند از عظمت ایران را ایجاد بکنند و پرشکن رو رستاخیز و نوزایی با چنین افکاری دیگر غیر ممکن این ما این که باید نخوست فرهنگ خودمون را پاس کنه نه اینی بیگانه فرهنگ ما را کشت کنه او نمیتونه کشت کنه این چونکه ما در این کشف فرهنگ خود اثر دائیده می شبیم. این ما این که باید انسان انسانی رو پیدا کنیم که مدنیت ساز است انسان جشت ساز رو در خود پیدا کنیم انسانی که با خدا با هم می اندیشن. انسانی که با عملش با فکرش میتواند بهشت بستاده یعنی اسر جمشید را در خود کشف کنه این جمشید که بون گناه کردن جمشید تباه کردن و فلج کردن انسان ایرانش. انسان ایران از اون روزی که جمشید دونیمه شد دونیمه شد دیگر جمشید نیست دیگر بهشتاد نیست دیگر پرباد با آسمان نمی کنه بدونید چنون تصویری از جمشید از این بون انسان ایرانی ما نخواهیم توانست شهر خرم یا ور جمشید رو بسازیم یا به عبارت های امروز جامعه مدنی دموکراسی یا برابری یا آزادی رو به بیاوریم. خوش و خرم باشیم.